الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرخ الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيبه من درس السوري يوسف عليه الصلاة والسلام ويأي أشتدها شفر الله جل شأنه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فوف فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين ويقبل مداشم يا بني إذ ذهب فتاحسسه سخن از يعقوب بود برید دنبال برادرتون جستجو بکنید يوسف و من يوسف دنبال يوسف بنیامین الان نیمده ولی دنبال يوسف زخم نش دوباره تازه شد با برنگشتن بنیامین برادر تني یوسف فرام ما و علیه قالو یا ايها العزیب اون دهتا برادر است برادران یوسف دوباره برگشتن نزی یوسف علیه السلام پدرشون فرستاده به قصد جویا شدن حال يوسف دنبال بگردن که يوسف کجاست جایی که میرنم مصره اون شهری که الا اون قافله ای که رد میشده عیر از اونجا اون مسیر مسیر قافله بازرگانانی بود که میرفتن به طرف مصر اون هم شهر بزرگ مصری که درش پادشاه مصر بود و می دونستم اونجا رفته همون قافله ای که از همون مسیر رد می شده با همون قافله یعنی هاز همون مسیر میرن به همون شهری که الا مقصد اون قافله بوده خب میرن در اون شهر جویا از یوسف علیه السلام جایی که هم شروع میکنن کجاست قصر پادشاه مصر میرن اونجا به بهانه گرفتن آذوقه میرن نزد خود یوسف علیه السلام فلما دخلوا عليه ومدن نزج ورادون قص شدن قالوا يا ايها العزيز اي عزيز مصر عزيز مصر نه سلطان مصر نیستا عزیز مصر مصر وزیر الان خصوصا یوسف علیه السلام در مقام وزارت خزانداری پادشاهی مس قرار گرفته. پادشاه مس همه دربار خودش میکنه که تصرف در کل خزانه داشته باشه. هر کاری میخواد بکنه تمام امور را سپرده به دست یوسف علیه السلام اطمینان کامل داشت بعد از اون خواب اون زندانی و آزاد شدنش رو بعد تعبیر خواب 15 سال برنامه ریزی کرده برنامه چیده برای پادشاهی مس گفتیم یوسف علیه السلام حساب کتاب بلد بود و یوسف علیه السلام الله باش علومی داده بود از علم غیبش که بتونه نافع باشه برای مردم شما شاید دارید درسانا از یک جنبه و زاویه نگاه میکنید نوه یک پیانبریه خودشم پیانبره پدرشم پیانبره پدر بزرگ پدرش هم ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف چهار تا دا پیغمبره. داستانی از برادران روخ میده، ظلمی بهش میگه. شاید ما یک زاویه نگاه بکنیم. نه، زاویه تفسیر سوره یوسف یا اون چیزی که الله بهمون به گفته در این قصه زوایای متعددی داره. قبلا اشاره کردم گفتم که الله بهمون به در این سوره یاد میده که اگر کسی به بهpostcssم من رسید چگونه تعامل داشته باشه چگونه تعامل بکنه حالا سررسی کشاورزا و کار کشاورزی و بحث دامداری و سررسی به کار اونها و امور کشاورزی یه طرف امور دامداری یه طرف امور بازرگانانیه طرف امور خزانه داری و سهمیه‌بندیه طرف که کی چقدر بگیره آذوقهش چقدر باشه خیلی از کارها رو پایریزی کرد یوسف علی در, در این اعتماد به دست اومد بعد از این مرتب کردن امور سیاسی دولت بزرگ اون دوران که الله داره میگه که خزانه دنیا بود خزانه الارد بود خزینه دنیا بود چون مردم اون موقع کالای برترشون خصوصا در علانی که قحطی و خوشحالی شده چیه قوتشون اون غذایی که بهشون نجات بده در اون خوش سالی. و یوسف علیه السلام بعد از اینکه اون پادشاه خواب دیده بود هفت تا گاوبتاق و هفت تا گاوبلاغر اومد برنامه‌ریزی که برای 14 سال و بعد از 14 سال که دوباره بارون میاد دیگه چی داشته باشن و چه کار بکنن برنامه‌ریزی همه اینا رو کرده بود نقشه درازمدت داشت برای اون امپراتوری به مصلحت مردم اون چیزی که من می‌خوام بهش برسم این قضیه است هرچنگ اینا کافرن وقتی که الله میگه و رحمتو و صحت کلش رحمت الهی همه جا را فرا گرفته رحمت به یوسف هست یه طرف که برادران مکر رنگ میکنن که تو چاهش بندازن که دیگه به قول خودمون جلو چشم پدرش سبز نشه پدر مال خودشون بشه یه طرف این قضیه است قضیه خود یوسف یه طرف دیگر مردم الله نمیخواد خلقش عذاب ببینن الله نمیخواد هرچند کافرن مهرداره بهشون محور نسبت بهشون رهاشون نکرده اونها رو آفریده که اسباب هدایت و اسباب زندگی براشون فراهم بکنه نه اینکه آفریده بشن و رها بشن همونطور که خدا الله جلشن و میگه که فکر کردید که شما رو آفریدیم که امتحان نشید نه امتحان هست یا اینکه فکر کردید شما رو بیهوده ابد خلق کردیم آفریدیم نه بیودی هم نبودید آیا فکر کردید که شما بازی بودید نه بازی هم نبودید با عباراتی مختلف لا و آیا فکر کردید بازی و بیهود بازیه یا عبث علکیه علکی نیست الله اینو میخواد با همون بگه نگاه بکنید امپراتوریه مثل پادش. دین پادشاه کفریه یه طرف که قبلا نشاهره کردیم دینش دین پادشاه یه طرف وثنی بود متپرستی بود عدیان متفاوتی داشتن اونا از اون ادیان بدپرسی ایه طرف رحمت به اونها به خاطر دنیاشون یوسف علیه السلام اومده امور دنیاشون تنظیم بکنه خب این وسیله میشه برای چی؟ امور آخرت حتی که یوسف مردم بهش اعتماد پیدا بکنن و اون جایگاه سلاح و خوبی خودش را حفظ بکنن و نفع منفعتش مردم در امر دنیا ببینن و از حکمت الهی ببینن که الله چقدر مهربانه بهشون که این شخص را گذاشت بایمون جور که قهته خوشتالی اگر یوسف نبود نابود میشدن خب این منت سبب میشه که حرف ما یوسف را بپذیرن چطور شد یوسف به این جای دارتی. چطور شد یوسف علیه السلام این چنین برنامه ریزی را بکنه جز این نیست که الله او را مدد میکنه او را کمک می کنه, یاری می کنه. یاری الهی بود که در اینجا قرار گرفته. خب این سبب میشه مردم حرف حق را از زبانش مپذیرن. همونطور که اینجا الله خیرخواهشون بود در یوسف. الله هم خیرخواهشون در یوسف در امر آخرت. در دنیا خیرخواهی یوسف در این 15 سال مشخصه. همه میدونن. همه هم اعتراف کردن. زنه هم مادر اعتراف کردن. ما هیچ بدی ندینیم از یوسف. زلیخ هم همه اعتراف کرد قد تنها کسانی که ناشکرم برا یوسف هم که الان اینها الله محتاجشون کرده که بیان نزد یوسف الان نومدن اینه یه بحث همینه اومدن نزد یوسف علیه السلام ای یوسف نمیگن یوسف عزیز مصر مسنا و اهلنا الدر ما مسیبت دیده ایم ما و اهل ما خانواده ما قوم ما ما مسیبت دیده ایم عصیب ضرر زیان در مستنا و اهلنا الدر و جئنا به بضاعت مزجا نازوقه نا ای که باید بگیریم نمیتونیم با اون کالا بگیریم اندکه اون پولمون هلاك میشیم اگر اون نازوقه به اندازه کافی به ما ندی فاو فلان الکیل کالمون اندکه پولمون نقدینگیمون اندکه ولی که تو ازوقه را به ما کامل بده و تصدق علینا تو هم بر ما صدقه کن یعنی چون مالمون اندکه اضافه بر اون به ما بده این چیه این احتیاجه این نیازه. همونایی که ظالم بودن الان مظلوم واقع شدن الان چهره مظلوم را به خودشون گرفتن ما مصیبت زده ایم اومدن دست به التماس یوسفن علیه السلام ای یوسف به دادمون برس نمیدونن هنوز که این یوسفه عزیز مصره الله چی میخواد به درس بده در این قضیه ظلم کردی قلدری کردی سرکشی کردی خود را بالا دیدی متکبر شدی یه روزی خواهد اومد اون کسی که برش تکبر ورزیدی تو در مقابلش زلیل و بشی. اون کسی که داری پارو سرش میذاری اون رو بر تو چیره خواهیم کرد. این سنت الهی. این داستان این قصه گفتیم در مکه بر رسول اساس هم نازل شده در مکه هستیم این جریان. چرا بر رساس در مکه نازل میشه؟ چون داره و ستم از قومش میبینه آزار اذیت با انواع آزار ت بتیت بیله همه معتم اغ هن و سمرات و سمر حمالات الحط عبول ح طرف ابو جهیه طرف مغیر یه طرف همه آزارش میدادن. با زبان، با تومت، با بهتان خیلی سخت بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره نازل میشه اسباب دلداری به رسول الله صلی الله علیه و سلام. نگاه یوسف چطور عزیز شد. ای محمد، آینده تو هم چنین درخشان و عزیزه. عزتت نزیکه، ذلت اونها هم نزیکه ای محمد علیه الصلاة و السلام. ها محتاجت میشن. همین ها ذلیل میشن در جلو تو. صبر کن فقط، شکیبا باش، صبور باش. درس عبرتی هست که الله داره میده هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلام فکر نکنن که مشرکین بخوان نور نبوت را خاموش یوریدون الیطفئ نور الله به افواه میخوان نور ال... نور نبوت خاموش بشه ولی که بدونن هر کسی توته‌ای بکنه مکری بکنه نیرنگی بکنه در صدد خاموش کردن نور نور وحی این سنت الهیه که اون شخص خورد میشه. هر کسی جلوش بگیره هر امپراتوری، هر ابرقدرتی، هر ابرقدرتی، الله عجیبه روسیه امروز یکی از تجاری که قرار شده بود که مسموم بشه و بعد مسموم هم میشه ولی خب نجات مییابه، بعد میاد به مسکو و دستگیرش میکنن تو فرودگاه. این شخص داد و بیداد میکرد که در زندان برام قرآن بیارین، میخوام قرآن بکنم، والا نمیدونیم صحت و سقم این ماجرا بردین. کاری به این ندارم. اون چیزی که برای من مهم از این قصه و ماجرا یک تاجر، پادشاهی و عرش قدرت یک رئیس جمهوری که زمام و عمر یکی از عبرقدرت های زمین را به آده گرفته بوتین خودش را رأسی از روس قدرت در دنیا میبینه لبن اصلی های هستهی و غیری که در اختیار داره برد یک از زورگان دنیا هستند در این هست چین، روسیه، آمریکا و انگلیس و فرانسه اینا عبرقدرت هایه که دویس ساله هیچ دسیسه ای را مکری را، نیرنگی را ازش دریغ نکردم بر شیره شدن بر کشوره چه مسلمان چه غیر مسلمان برای چه پاول کردنه سروت ها مسلمان دیگه اومدن برای چه پاول کردن از هر کشوری چی میخواد هند باشه چه کشوری مسلمان باشه از عربش، از عجمش کشوره ظالمیه ولی شما نگاه کنید یک تاجر همت هر شيء یک قدرت را به تکون در آورد یک دعوتگرم هم طور یک داهیه هر کسی میخواد باشه داره مثال میزنه الله برای من و شما که درس و عبرت بگیریم با دین الله در نیفتیم اون کسی که با دین الله در بیفته خودش خرد میشه له میشه حتی اگر عبر قدرت ترین کشور دنیا و قدرت دنیا باشه مباصفت محکم باشیم. خودمون نبازیم سفت و محکم باید باشیم مسیر اون کشور الا بخواد ترور بکنه بکشه نابود بکنه خون اون یک دعوتگر از هزاران بمب هسته‌ای بر اون کشور قدرتش و توانش بالاتره اون هر شو پایه‌هاشو کاملا سست و نابود میکنه یک خون مردم بیدار میشن مردمی که نشنیدن از اون دعوتگر میشنوند علمی که داشته اون کسی بهش همیت نداده الان همیت میدن این مسیر عزته الله داره درس و عبرت مهم میده یک نو دلداری یک صبر دی ای پیغمبر این مسیر مسیر عزته و بدون که تو سربلند خواهی شد و اونا سرفکنده چنانچه اینجا برای برادران یوسف پیش اومد. ان الله یجز المتصدقین. هر کسی هم صدقه بده، الله جزای صدقه‌شو میده. اینجا دوباره نگفتن ان الله یجز المسنین مثلا، کلمه احسان رو به کار نبردن. یک بار کلمه احسان رو بکار بردن. ما تو رو از محسنین میبینیم. چون اینا فکر میکنن که این عزیز مصر دینش غیر از دین ابراهیمیه. چون در دیانت ابراهیمی و اسلام صدقه هست و این عبادت صدقه هست که در ازاش پاداش اخروی هست. خب اینا دارن تشویق میکنند عزیز مصر را به صدقه دادن که هر ملتی اعتقاد بهش دارند کنسان جزای خوبی رو خوبی در همین دنیا می‌بینه. حالا بعضی مفصل میگن از کلمه احسان و محسن به کار نبردن چون احسان لازمش اینه. اینی که انسان وقتی احسان میکنه، احسان بالاتر از صدقه دادنه، تصدقه. صدقه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند ان صنائ المعروف التقيه والهلكات. میگن صدقه دفع بلاست. والله واقعاً همینطوره یعنی. چرا در حدیث اومده؟ صدقه دفع بلاست، دفع بیماری است، دفع ضرر جلوی پیش اومده‌ای بد رو می‌گیره، گناه ها رو پاک بیکنه در این دنیا آدم پاداش صدقهش رو میبینه خوبی کردی باید خوبی میکنه الله و من انفقتو میشه اینفه هوای اخلفو بعده الهیه هر چی دادیم جای گذرش ما باید میدیم بلکه بیشتر از اون باید در دنیا خواهیم داد بعده الهی در این دنیا الانم و برادران یوسف علیه السلام از همین واژه استفاده میکنن صدق بدی پاداشش شد میبینی تو در همین دنیا این تجربه ثابت کرده و همه ادیانش قرار دارن ولی که در آخرت را نه که اخرت ای هست دنیای دیگری خواهد بود که اونجا انسان در ازای خوبیش احسان ببینه گفتیم احسان بالاتر از صدقه است که انسان خوبی بکنه نه به تمعن دنیا به تمع آخرت که قبلا ما گفتیم سه تا ثم ورثن الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم و لنفسي که همون درجه اسلامه و منهم که درجه ایمانه و منهم سابق بالخيرا درجه احسانه در حديث جبريل شرحش اومد که جبريل مزون و زاني هم نشات قال مل اسلام قال تشهد الله ان لا آخرش شهادتين و نماز و روزه مل ایمان قال تو بالله ملقتی کتبی الرسولی و لیوم الآخر و قدر خیری و که بحث اعمال قلبی درجه اقتصاد و درجه اخر درجه چیه سابق بالخيرات اونهاي که پشتازن در خوبی انجام دادن و بدون مننه انجام دادن بدون طمع این دنیاوی انجام دادن انجام میدن احسان میکنن و تعبد الله کانک تراه فقط الله رو ببینی و پاداشش آخره سابقون بالخيرات این درجه مقام بالایی است که الله میخواد ما بهش برسیم پس اینجا برادران یوسف چون نمیدونن از دیانت عزیز مصر را تشویق میکنن به صدقه نه به احسان تو صدقه بده که الله جزای صدقت را میده قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف ان انتم جاهلون عزیز مصر برادرشون نه وقتی که این مقام رو میبینن. خب بالاخره انسان هر چی باشه وجدان داره، ذمیر داره. شما خودتون در جایگاه یوسف علیه السلام بذارید. برادرت عمرت دست به التماس. نمی‌دونم که تو برادری. بعدم از واجعه که درش جلب عطوفت و مهربانی باشه ما بچه داریم، زن داریم خانوادهمون دارن هلاک میشن خب یوسف چی میشه اینجا؟ شما جای یوسف خوضا میذاری؟ برادر اومده، دست حاجت رو دراز کرده میگه من و خانواده داریم نابود میشیم خب پدرشم اونجاست، پدر یوسف مقام سختی یوسف نمیتونه به خودش بگیره این مقام رو برای خانواده‌اش میبینه و اونم به خاطر چی این زجری که دارن میکشن اونها به خاطر و به خاطر حریص بودن بر دنیا اهمیت دادن به دنیا اومدن تو چاهش انداختن فقط به خاطر اینکه پدرمون توجه بیشتری به یوسف داشت که خودشه فقط به خاطر دنیا بود اینطوری الله خارشون کرده یوسف میتونه این رنج درده، آدم می‌رنجه که مردم چرا اینقدر حرص و تمع دنیا دارن به فکر آخرت نیستن چون زمیر یوسف به تکون در میاد وقتی که اینچنین از خانوادش میبینه و میشنوه مستنه و اهل دور و میگه ای پنی اسرائیل فرزندان اسرائیل فرزندانی خب قبلا چه کردید چما با یوسف و برادرش از قبل چی کردید با باشون مقام یاداوریه یوسف علیه السلام دعوتگره دنبال فرصت برای دعوت دادن ولی با نیکی با زبانی خوش اومدم برای تعبیر خواب مستقیم تعبیر خواب برایشون نمی‌کنه دخل معه و سجن فتیان دوتا جوان وارد میشن دعوتشون میده میدونید من الله رو میپرسم بوترو نمیپرسم مردگان رو نمیپرسم آدم باید بواسطه با الله باشه آخرتی از حساب کتابی از دعوتشون میده چون خیلی از ما فراموش میکنیم. فرصت تلبی یوسفه و اینجا هم فرصت رو غنیمت شمرده یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام فرصت رو غنیمت شمرد اینها رو یاداوری میکنه به اون ظلم اون ظالمی که تاریکیست در روز قیامت میدونید اون ظالمی که کردید شما به یوسف ظالمی کردید به برادر یوسف برادر ناتنی آیا این ظلم رو یادتون هست اذ ان جاهلون زمانی که شما جاهل بودید زمانی که شما نادان بودید از آخرعاقبت کارتون نمیدونستید چون واقعیت هر خطاکاری واقعیت هر خطاکاری اینه که به عاقبت کارش فکر نمیزنه نمیاندیشه یک درهم من به حرام خوردم یک قیبته که من پشت سر یک برادری حرف زدم واقعیت حال من خطاکار چیه؟ جهل به عقوبت سختی که من خواهم داشت در جهنم در قبل این قدم شرط توصیه میکنه مرا نبی صلی الله علیه و آله به قبر فرأ انهما يعذبان تو تقابر راحت میشه رسول الله یاداوری میکنه به اصحابش دارن عذاب میکشن والله به خاطر غیبت به خاطر نجاست همش یادآوری شر که توصیه میکنه به اینکه انسان به آخر عاقبت نگاه بکنه هر کاری تو انجام میدی باید فکر بزنی که نتیجه چی خواهد شد سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده الله علی محمد و محمد